راه درمان عجب چیست؟ راه درمانش این هست که با افراد متواضع برخورد داشته باشیم. افرادی که برای خودشون در عمل، در جایگاه ولی متوازن با اونها باید دلزده نزدیک بشیم، زندگینامه‌های بزرگترها رو بخونیم. بزرگانی که از جای فوق ما هستن اما تواظه شما بسیار زیاده زندگی ناوشم رو بکنیم نماثره یه بقیق به مقایسه نیبتیم مقایسه میکنیم به عوض میبتیم چا کتاب خاصی پیشنهاد داری؟ کتاب متعدد نمیشته شده ولی این کاری که از از هر کتابی بهتره